و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و کوه تور را بر فراز شما برفراشتیم و گفتیم آنچرا به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و به دستورهای آن گوش فرادهید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشان مهر گوساله در دلشان سرشته شد بگو اگر مؤمنید بدانید که ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد